دوست عزیزم، به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدید. به فیض خداوند، من از این امتیاز برخوردارم که بررسی کل کتاب مقدس رو از پیدایش تا مکاشفه با شما انجام بدم. بررسی ما الان به عهد جدید رسیده و با یکدیگر نامه امیق پولوس رسول شاگرد عیسی مسیح به روم رو بررسی میکنیم. ما در مورد حقایق بسیار عمیق کلام خدا آموختیم. ما میدونیم که ما شروع کردیم تا بفهمیم که چگونه میشه این حقایق رو به صورت عملی در زندگی روزانمون پیاده کنیم. پس با ما همراه باشید تا کتاب رومیان رو با هم ادامه بدیم. در جلسه قبل به بررسی قسمت آموزشی بزرگ شاهکار عالی الهیاتی پولس رسول پرداختیم. پا باب اول نامه پولس به رومیان امیقترین ترین قسمت الهیاتی کتاب مقدس در عهد جدید است پولس به بررسی قسمت الهیاتی و تعلیماتی این نامه میپردازه مثل تمام نامه‌های دیگر پولس از اینجا به بعد او شروع به قسمت عملی یا کاربردی نامه الهیاتی خودش میکنه او اینطور شروع میکنه پس ای برادران در پرتو رحمت خدا از شما استدعا میکنم که بدن خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا به او تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است. و دیگر هم شکل این اصر مشوید بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص خاست خدا خواهید بود. خاست نیکو، پسندیده و کامل او. از این طریقه که پولس رسول قسمت عملی و کاربردی نامه عمیق خودش به رومیان رو شروع میکنه، کنه، نامه پولس رسول به رومیان یک قطنامه الهیاتی بسیار جامع برای ایمان ماست که تا بهال نوشته شده است. اما با این حال که محتوای بخش تعلیماتی و آموزشی این نامه خیلی عمیق است، بخش کاربردی نامه پولس به رومیان به شدت عملی است. همونطور که گفتم تمام نامه های پولوس به دو بخش تقسیم میشن بخش آموزشی و بخش کاربردی. وقتی ما وارد بخش کاربوردی نامه پولس رسول به رومیان میشیم متوجه این موضوع میشیم که پولس ما رو تشویق میکنه تا حقایقی رو که با ما در میون گذاشته اول نسبت به خدا و بعد نسبت به خودمون به کار ببریم پولس ما رو تشویق میکنه که تمام آموزه های او رو نسبت به بدن مسیح انجام بدیم به کلیسای محلی که هر کدوم از ما بخشی از اون هستیم و بعد ما رو تشویق میکنه که تمام آموزه های او رو نسبت به بدن مسیح انجام بدیم و نسبت به کلیسای محلی که هر کدام از ما بخشی از اون هستیم و بعد ما رو تشویق میکنه که تمام این حقایق رو نسبت به دولت به کار بگیریم پولس در رابطه ما با دولت حرفای زیادی زده در آخر در باب 15 پولس ما رو تشویق میکنه تمام این حقایقی که در کتاب رومیان آمده. نسبت به دنیای اطراف خودمون انجام بدیم حالا نگاهی به قسمت کاربردی این نامه میندازیم ما قبلا متوجه شدیم منظور پولس از انجام این حقایق نسبت به خدا چیه پولس به ما گفت که در خدا متمرکز بشید و پی ببرید که خدا سرچشمه تمام چیزهاست خدا قدرت پشت هر چیزی هست و جلال خدا دلیل هر اتفاقیه همچنین پولس به ما در مورد اینکه این حقایق رو چگونه نسبت به خودمون انجام بدیم هم گفته ما باید اراده خوب پذیرفته شده و عالی خداوند رو پیدا کنیم مثل تمام چیزهایی که پولس در مورد آنها در نامش به ما گفته. باید اضافه کنم که ما در قسمت قبلی دیدیم که خاست خدا برای زندگی های ما چگونه است. در باب دوازدهم پولس درباره عطایای روح به ما گفته و در ادامه پولس درباره عطایای مختلف روح صحبت میکنه. اینجا یکی از جاهایی هست که قلم به قلم در مورد اتایای روح برای ما نوشته پولس جزئیات بیشتری رو در مورد موضوع هر تییه در نامه های خودش به قرنتیان توضیح میده اما اگه لیست اتایایی که در این نامه و نامه های به قرنتیان و افساسیان رو نگاه کنید و اگه اونها رو به اتایایی که دیگر رسولان از اونها صحبت کردن مقایسه کنید با یک لیست 20 یا 21 تایی از روح مواجه میشید که در کتاب مقدس عنوان شده نکته بسیار مهم این عطایا اینه که همه اونها زیر نظر یک روح کار میکنند. به عبارت دیگه روح القدس در این جهان به وسیله عطایایی که به ایمانداران اعطا شده کار میکنه وقتی مردان خدا این عطایایی رو که روح القدس به اونها عطا کرده پیدا میکنند و از اونها استفاده میکنند کار روح القدس شروع میشه به خاطر اینکه کار و عمل روح القدس از این طریقه هست. پولس این اصل رو با ما در باب دوازده زمانی که درباره عطاای روح القدس صحبت میکنه در میون میذاره. مثل یک هدیهی که در مدرسه گرفتیم مثل هدیهی از یک شبان یا برکتی از یک موعد که میشنویم، یا مثل هدیهی که یک ناظر به دلیل انجام کار صحیح به ما میده. او این اصل رو اینطور بیان میکنه: اگر خدمت هست، خدمت کند اگر تعلیم هست، تعلیم دهد وقتی شما عطیه خودتون رو کشف میکنید، بر روی اون تمرکز کنید و از دیگر افرادی که در بدن مسیح زندگی میکنن انتظار داشته باشید که عطیه خودشون رو کشف کنن و روی اون تمرکز کنن و بتونن اون رو توسعه بدن. این نشون میده که ما چقدر به همدیگه نیازمندیم. در شش باب اول کتاب اعمال رسولان ما این تفاوت رو دیدیم. کسانی که عطیه روح القدس آنها شبانی هست، و کسانی که عطیه آنها خدمته گفتن شما با عطیه خدمت به مردم نشان دهید که کار کلیسا چی هست و ما افرادی که عطیه شبانی داریم به طور مداوم و یک پارچه برای خودمان دعا می کنیم و کلام خدا را بشارت می دیم. خدا به طور عظیمی به این تصمیم برکت داد این تصمیم به این معنا بود که عطیه شما در هر ای که هست باید بر روی همون موضوع توجه داشته باشید و از افراد دیگری که در بدن مسیح همان همانتیه شما رو دارن و روی اون تمرکز ندارن بخواید که این کار را انجام بدن اگه عطیه‌ای که شما دارید عطیه آموزش هست و تمام وقتتون رو صرف آموزش کنید، این به این معناست که شما نمیتونید یک ناظر باشید ممکنه شما شبان یک کلیسا یا معلم کتاب مقدس باشید اون موقع شما باید منتظر باشید که یکی از افراد کلیسای شما عطیه نظارت رو دریافت کنه اگر اونها عطیه خودشون رو پرورش بدن مسئولیت نظارت کلیسا به عهده آنها خواهد بود شما باید توسط خداوند تجهیز بشید و انتظار داشته باشید که برادران و خواهران شما در بدن عیسی مسیح نیز تجهیز بشن. این به اون معناست که امکان داره عطیه ای رو که شما ندارید کس دیگه ای داشته باشه عطیه ای که شما دارید دیگران نداشته باشند این به اون معناست که شما به برادران و خواهرانتون نیازمندید و اونها هم به شما نیاز دارند این بسیار زیبا است همونطور که پولس در قسمت کاربوردی کتاب رومیان در باب دوازده رو ادامه میده. او ما رو تشویق میکنه که این حقایق رو که او در این نامه با ما در میون گذاشته با مسیحیان کلیسا یا جلسه محلی که در اون شرکت میکنیم با مسیحیان دیگه در میون بذاریم. این عملی ترین قسمت نامه پولسه. اگه شما باب دوازده رو مطالعه کنید میفهمید که پولس چگونه این قسمت رو با کاربردی که داره بیان میکنه همدیگر رو محبت کنید. منظورم محبت بیریاس، منظور من شکلی از محبتی که فقط درباره اون صحبت میشه نیست. ما باید همدیگر رو به طور واقعی در بدن یک ایماندار محبت کنیم. سپس باید پاکی واقعی داشته باشیم. از بدی دوری کنید و به آنچه نیکوست به پیوندی. ما باید توبه واقعی کرده باشیم. توبه یک آموزه بسیار مهم در کتاب مقدس هست. وقتی که ما گناهکاریم همون طور که در قسمت‌های قبلی کتاب رومیان یاد گرفتیم زمانی که می‌خوایم توبه کنیم و یا تجربه توبه رو داشته باشیم می‌تونیم در همون لحظه توبه کنیم پولس در این قسمت عملی باب دوازده میگه ما باید واقعا فروتن بشیم. برای یکدیگر ارزش قائل باشید شما باید مردمان عادی رو هم دوست داشته باشید نه فقط کسانی که ذهنشان روشن شده تقوای یک مسیحی فروتنی او هست که همیشه در دستور کار شاگردان بوده. در قسمتی از باب دوازدهم میبینید می بینید که پولس چگونه در مورد اون صحبت میکنه در مسیح یک بدن را تشکیل می دهیم و هر یک اعضای یکدیگری. امروز ما بیشتر در مورد وحدت کلیسایی یا حرکت وحدت در کلیسا صحبت می کنیم. وحدت کلیسایی ای هست در این رابطه که تمام فرقه های مسیحیت با هم یگانگی داشته باشد. یگانگی بعضی وقتها وحدت و یکپارچگی پارچگی بر اساس این بیان میشه که همه ما از یک راه مشترک کارهایمان را انجام میدیم که این ممکنه یکپارچگی نباشه ولی یک سانسازی افراده بعضی وقتها ما با کسانی جمع میشیم که به هیچ چیز اعتقاد ندارن پس خیلی راحت تره که با خودمون جمع بشیم هیچ کس باور نداره که آنها به چیزی باور دارن پس ما میتونیم به راحتی دور هم ایمانان خودمون جمع بشیم اگرچه وحدتی که پولوس در اینجا صحبت میکنه وحدت واقعی کلیساییه این وحدت بر این حساس بنا شده که همه ما در مسیح یک هستیم و عضو یک خانواده وقتی پولس میگه با محبت برادرانه سرسپرده هم باشید معنیش اینه که ما باید مثل یک برادر روابط و احساسات گرمی بینمون جاری باشه ما در یک توازن با هم زندگی میکنیم. این مهمترین حقیقت در قسمت کاربردی نامی پولس به رومیان هست. بعد از اون پولس میگه در رف احتیاجات مقدسان سهیم بشید و میهمان نواز باشید. پولس میهمان نواز بودن رو یکی از عطایای روح القدس بیان میکنه. میهمان نوازی نیست که شما تنها میهمان نواز باشید. یعنی آنقدر به دنبال مردم برید و به اونها عشق بورزید. این یک قسمت عملی خیلی مهم از کارهایی است که پولس به ما گفته و بعد پولس میگه هیچگاه غیرت شما فروکش نکنه بزرگترین غیرتی که تا به حال کسی در دنیا دیده غیرت یک جوجه است وقتی که در پنج ثانیه میخواد سرش را از توی تخمش بیرون بیاره ولی اون غیرت چیز سودمندی برای دیگران نداره غیرت یعنی سودمندی این یک دروغ از طرف شیطانه که به فرزندان خدا میگه لزوما غیرت سودمندی نیست بلکه جانشینی برای سودمندیه. وقتی پولس میگه هیچگاه غیرت شما فروکش نکند در کار سستی نکنید و در روح شولور باشید و خداوند را خدمت کنید واژه کار در اینجا مسئولیت معنی میده پس پولس در اینجا منحصرا در مورد افراد شاغل صحبت نمی کنه پولس میگه در مسئولیت خود سستی نکنید به خاطر اینکه گرفتار خیلی چیزها هستید سستی نکنید پولس رسول مردی بود که میدونست اولویت زندگیش چیه پولوس در مورد این میگه این تنها کاریه که باید انجام بدم. فکر میکنم که خیلی از ماها به خودمون میگیم من هزاران بار تجربه کردم ولی نتونستم اون کارها رو به نحو احسن انجام بدم. ما تلاش کردیم که خیلی کار انجام بدیم. ما در فضای کم عمق و گسترده به عمق یک سانتی متر و عرض یک کیلومتر جستجو کردیم و چیزی پیدا نکردیم. این چیزیه که پولوس به ما میگه. در مسئولیت خود سستی نکنید در روح شولور باشید و خداوند را خدمت کنید. بعد پولس در مورد داشتن انگیزه واقعی، شاهدی واقعی، دعای واقعی و ایمان واقعی صحبت میکنه. حالا متوجه میشید که چرا من گفتم قسمت کاربردی نامه پولس خیلی کاربردیه. باز هم میگم ببینید وقتی که وارد باب می میشید، حتی قسمت آموزشی این رساله عمیق و الهیاتی شکل کاربردی به خودش میگیره. این تاکید بسیار مهم بر زندگی واقعی و عملی انجیل برای جهان ما هست. در باب چهاردهم پولس ما را تشویق میکنه و در این مورد صحبت میکنه که چگونه باید حقایق کتاب رومیان رو بر اعضای بدن مسیح که هر کدام از ما بخشی از اون هستیم در زندگی خودمون به کار ببریم. یه نفر میگفت برای زندگی روحانی مثل قدیسان ما باید عشق بورزیم. چقدر شکوه و جلال داره. اما زندگی دنیایی که هر کدوم از ما میدونیم داستان دیگه ایه. وقتی که شما رومیان باب 14 هم رو میخونید میفهمید که پولس هرگز به کلیسای روم نرفته او ادعی از افراد رو میشناخت که از روم آمده بودند و یک سری افراد رو میشناخت که به روم رفته بودند پس به این صورت بود که پولس چیزهای نه چندان زیادی درباره کلیسای روم میدونست در باب 14 رومیان شما شاگردانی رو می‌بینید که در رابطه با رژیم غذایی مشکلاتی دارند. بعضی از اونها یهودی بودند و بعضی از اونها غیر یهودی. همونطور که ما در شورای اورشلیم در باب 15 کتاب اعمال رسولان دیدیم، این اولین موضوع در کلیساهای اولیه است. موضوع این بود که افراد غیر یهودی باید آداب مربوط به رژیم غذایی یهودیان رو اجرا کنند. و یک موضوع دیگه هم بود آیا یهودیانی که تازه تولد یافته بودند و مسیحی شده بودند باید قوانین موسی را رعایت کنند خب رژیم غذایی تبدیل به یک مسئله واقعی در کلیسای روم شده بود و پولس در این مورد در باب صحبت میکنه همونطور که این یهودیان و غیر یهودیان تلاش میکنند که با هم زندگی کنند باید در رژیم غذایی متفاوتشون دقت کنند اونها اون روزها مشکلات دیگه ای هم داشتند یهودیان اعتقاد داشتند که هفتمین روز هفته که روز آخر هفته بود روزی که به خدا تعلق داشت و در اون روز باید به طور ویژه خدا رو پرستش کرد و استراحت کرد و برای هفته بعد آماده شد. در ده فرمان خدا گفته که او یکی از روزهای هفته ما رو برای خودش میخواد. خدا میخواد که فرزندانش یک روز رو به او اختصاص بدن. روز سبت رو یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. جالب اینجاست که شاگردانی که از یهودیت به مسیح اومده بودند، روز پرستش خودشون رو از روز هفتم به روز اول هفته تغییر دادند. اونها به روز پرستش خودشون دیگه سبت نمیگفتن. به این خاطر که واقعا سبت نبود. واژه سبت یعنی هفتم. این شاگردان روز اول هفته خودشون رو به نام روز خدا نامگذاری کردند. اونا این رو انتخاب کردند چون در روز اول هفته بود که خداوند از مردگان قیام کرد. این یک استدلال مهم برای رستاخیز ایسای مسیح بود. چه چیزی باعث شد که ایمانداران یهودی روز پرستش خودشون رو از روز هفتم هفته به روز اول هفته تغییر بدن این باید یک واقعی خیلی العاده بوده باشه شاگردان اینطور میگن رستاخیز عیسی مسیح باعث شد که آنها روز پرستش خودشون رو از روز هفتم هفته یعنی سبت به روز اول هفته تغییر دادند در کلیسای اولیه بعضیها یهودی بودند که پیش زمینه دینی خودشون رو داشتند و بعضیها هم غیر یهودیانی که هیچ وقت روز هفتم هفته رو برای پرستش کنار نذاشته بودند. نظرات آنها اینطور بود روز اول هفته خیلی مخصوص هست اما مهمترین چیز در مورد قانون روح قانون هست قایده سبت خیلی مهم بود قایده سبت این بود که یک روز رو برای استراحت و پرستش کنار بذارد. روز اول هفته روز خداوند نامگذاری شد با این حال بقیه به تمام روزهای هفته احترام میذاشتن پولس به این شکل در باب چهاردهم رومیان صحبت میکنه کسی یک روز را از دیگر روزها مقدس میشمارد و فردی دیگر همه ی روزها را یکسان میپندارد منظور پولس اینه که کسی یک روز را بالاتر از بقیه ی روزها میداند ولی یک نفر دیگر تمام روزها برایش ارزش یکسانی دارند به عبارت دیگه پولس میگفت منظورتون چیه که روز اول هفته روز خداونده پس روز دوم چیه روز سوم چیه روزهای بعد روزهای دیگه روز شماست؟ نه تمام روزها روز خداونده پس تمام روزها مقدسند. یک روز از بقیه روزها بالاتر نیست. میبینید که اختلافات آنها به چه صورت بود؟ اونا همینطور در مورد نوشیدن هم اختلافاتی داشتند. شاگردان در تمام طول تاریخ کلیسا در مورد مسئله نوشیدن با هم توافق نداشتند. در کلیسای اولیه در روم آنها با نوشیدن موافق نبودند. در رومیان باب 14 همونطور که پولس برای حل این مشکل و دیگر مشکلات با شاگردان صحبت میکنه، او با ما قسمت فوقالدایی رو در میون میذاره که خیلی شبیه سه باب از نامه بعدی هست که با هم بررسی خواهیم کرد. در نامه پولس به قورنتیان، پولس باب رو در اولویت قرار میده، باب 8 هشت و نه و ده تا به حل مشکلاتی به پردازه که دقیقا شبیه همین مشکلاتی که در کلیسای روم وجود داره. قاعده ای که پولس اون رو با ما در سباب نامه قرنتیان در میون میذاره شبیه قاعده ای که اون رو در بخش کاربردی رساله رومیان با به چهارده با ما در میون گذاشته اگه پولس با مسئله ای مثل قتل یا دزدی برخورد میکرد او نمیتونست بگه هر کس در ذهن خودش متقاعد باشه اون میگفت ده فرمان این را گفته و هر چی گفته درسته با این حال پولس این کار رو نکرد به این خاطر که این اختلافات شامل اختلافات خاکستری میشد. به این معنی که این اختلافات نه کاملا سیاه بودند و نه سفید. راست یا غلط. ده فرمان فقط در مورد مشکلات سیاه یا سفید صحبت میکرد. پولس در رابطه با اظهار نظر در مورد این اختلافات خاکستری ایمانی میگه مهمترین چیزها اینه که هر فردی باید در ذهنش کاملا متقاعد بشه. پولس با این جمله ادامه میده. هر کسی در ذهن خودش متقاعد بشه اول از همه بر اساس وجدان خودش کارها رو انجام بده. وجدان صدای آرامی است که باعث میشه افراد کمتر احساس گناه کنن. وجدان صدای آرامی در درون شماست که میگه این اشتباهه، این اشتباهه. وجدان افراد از کجا میاد؟ در بیشتر مواقع وجدان ما بر اساس چیزی که یاد میگیریم شکل میگیره. وجدان یک واکنش شرطیه. وقتی که من بچه بودم والدین من یه سری هنجار و ناهنجار رو برای ما درست کرده بودند. اونها خیلی مؤمن و قانون مدار بودند. برای اونها هیچ شکی برای اختلاف خاکستری وجود نداشت. در ذهن اونها هیچ شکی درباره ناهنجاری های خودشون وجود نداشت. از جمله دزدی یا قتل و یا هر خطایی. برای مثال اونها هیچ وقت در روز یکشنبه نه می خریدن و نه می‌خواندند. اونها خیلی ساده اعتقاد نداشتند که در روز یکشنبه میتونن روزنامه ای داشته باشن حالا که من مرد بالغی هستم و خیلی وقتی که از این هنجارها و ناهنجاری‌های والدینم دور هستم با این حال وقتی که من روز یکشنبه کاغذی رو میخونم در درونم کمی دوچار عذاب وجدان میشم روزنامه های یک یکشنبه رو روز دوشنبه میخونم حالا این به این معنی نیست که خوندن روزنامه در روز یکشنبه کار اشتباهیه این به این معنیه که من اینطور فکر میکنم پولوس نمیگه که عذاب وجدان راهنمای ایمنی برای ما هست. پولوس عنوان میکنه که بهتر شما به صدای وجدانتون گوش بدید. برای اینکه اگر وجدان شما بگه که این کار اشتباهه، شما نباید خلاف وجدانتون عمل کنید تا دچار عذاب وجدان بشید. بلکه هر کسی در ذهن خودش باید کاملا متقاعد باشه براساس آنچه که ما فکر میکنیم و شرطهایی که داریم. پس طبیعیه که مردمی که یهودی بودند و در مورد رژیم غذایی و روز مقدسشون یک سری عقاید داشتن این عقاید و احتراماتی که پایبند اون بودن از پس زمینه دینیشون سرچشمه میگیره. پولس قدم بعدی رو با این جمله در باب چهدهم برمیداره. قدم بعدی که هر کسی باید در ذهن خودش کاملا متقاعد باشه که مجاب بشه. دقت داشته باشید که بین وجدان و مجاب شدن تفاوت هایی هست، مجاب شدن نتیجه ای هست که از طریق گناهکار شناخته شدن شما توسط روح القدس راجب این که چه چیزی درست یا غلط حاصل میشه مجاب شدن یا ملزم شدن موضوعی که عقاید شما چه فکری میکنه و به شما چی یاد داده مجاب شدن نتیجه ایه که از طریق گناهکار شمردن شما توسط روح القدس بیان میشه روح القدس تمام ایمانداران رو بر یک اساس ملزم نمیکنه ما دوست داریم فکر کنیم که روح القدس مجبوره پس اگه ما ملزم شده ایم، میتونیم کتابی بنویسیم و توی اون هنجار و ناهنجار این اختلافات خاکستری رو شرح بدیم. و به دیگران بگیم شما حالا نمیتونید این کارها را انجام بدید چون من نسبت به این کارها ملزم شدم. پولوس به ما نمیگه که این کار را انجام بدیم. پولوس میگه از اونجا که علاقمندید که در ذهن خود کاملا متقاعد باشید از وجدانتون پیروی کنید. و به مولزم شدن خودتان اهمیت بدید اما پولوس بعد یه قدم فراتر میره و میگه شما همچنین باید این مسائل رو با در نظر گرفتن اینکه برادرتون با شما متفاوته حل کنید به عبارت دیگه هیچ کس جانشین کسی نیست هیچ کس برای خودش زندگی نمیکنه هیچ کس برای خودش نمیمیره. پس شما باید کارهایی رو که انجام میدید مورد توجه قرار بدید باید بدونید که چطور میشه دیگران رو تحت تاثیر قرار داد من به دانشکده کتاب مقدسی می رفتم که خیلی سخت و سنتی بودند و حتی اجازه گوش دادن به هر نوع موسیقی رو به ما نمی نمیدادند. وقتی که به اون کالج می رفتم من از یک نوع موسیقی خیلی خوشم می اومد. چند چندتا نوار برای خودم ضبط کرده بودم و دوست داشتم اونها رو گوش بدم. قانون اونجا این بود که اجازه انجام این کار رو نمیدادند. خب من فکر می کردم که این یک قانون بی معنی هست. پس تحت هر شرایطی من موسیقی هایی که با خودم برده بودم رو گوش میدادم توی هر اتاق پنج نفر زندگی میکردیم یه شب هم اتاقی من از من خواست که با او به سالن برم از من پرسید نظرت در مورد این موسیقی که گوش میدی چیه گفتم بذار بگم که در موردش چی فکر میکنم او به من گفت که قبل از اینکه به مسیحی بیاره فردی کاملا دنیوی بوده بدون هیچ سرپناهی و یک زندگی گناهالود داشته حالا او اینجا با من زندگی میکرد در ای که درس میخوندیم برای بشاره وقتی او هم موزیک هایی مثل این موزیک رو گوش میداد به من درباره خونه سگ و تمام چیزهای خوبی که من دوست داشتم گوش زد می کرد. ولی این موزیک ها تنها او رو یاد زندگی گذشتهش میداد بعد بعدو گفت امیدوارم بتونی واسم یه کاری انجام بدی. من دارم تلاش می کنم که اون زندگی گذشتم رو فراموش کنم وقتی او این حرف رو با من در میون گذاشت کسی تا حال به من درباره قوانین نگفته بود ولی به خاطر مورد توجه قرار دادن وضعیت هم من دیگه تمایلی به گوش دادن به اون آهنگ ها نداشتم. فهمیدم که این کار باعث میشه که اون در رابطه با زندگی قبلی خودش به مشکل بخوره. پس من تصمیم گرفتم که دیگه به اون آهنگ ها گوش ندم. پولس روی سخنش با این شاگردان در روم این بود: همونطور که اونها مشکلاتشون را حل میکنن میگه در ذهن خود از ملزم شدگی و وجدانتان پر باشید. با این حال اون اینجا توقف نمیکنه. برای صحبت های پولس شما باید این مشکلات رو بر اساس ملزم شدن برادران خودتون حل کنید حتی اگر برادر شما حق نداشته باشه اگه فکر میکنه که این کارها کارهای اشتباهیه و بر اساس وجدان و ملزم شدگی که مشکلاتی برای اونها پیش میاد مشکلات اینجا و همچنین مشکلات نامه پولس به قرنتیان نمیگه که چی درسته و چی درست نیست مسئله اینه که چقدر برادر خودتون رو دوست داری شما قرار نیست بر اساس کار خودتون برادرتون رو لغزش بدید. شما قراره که کاری رو انجام بدید که باعث تقویت و بنای برادرتون بشه. حالا بر این اساس پولس میگه ملاحظه برادر خود رو بکنید. به عبارت دیگه او در اینجا و در نامه به قرنتیان چی داره میگه؟ او میگه بر اساس خوش این مشکلات رو حل کنید. محبت باید فعال باشه. محبت میتونه اساسی باشه تا این مشکلات رو حل بکنه. در رومیان باب دوازده و چهارده پولس خیلی حرفا در مورد کاربرد عملی این حقایق برای به کار بستن اونها در زندگی برادران و خواهران شما در بدن عیسی مسیح داره. در باب سیزده هم، پولس در این بار صحبت میکنه که چگونه میتونیم حقایق کتاب رومیان رو نسبت به حکومت خودمون انجام بدیم. این برای ایمانداران خیلی مهمه که بفهمند روابطشون با حکومت چگونه باید باشه ؟ در اناجیل ما اتفاقی داریم که به نزد ایسا میرند از او میپرسند که آیا درسته که مالیات پرداخت کنند و عیسی میگه مال قیصر رو به قیصر بدید و مال خدا را به خدا وقتی به این قضیه نگاه میکردیم من گفتم که خدا هرگز نپرسید که این قیصر کدوم قیصره که این مال رو به او میدید اینجا هیچ مشکلی به چش نمیومد اما گاهی این قیصره که میپرسه چی مال خداست تو نمیتونی این قسمت رو به خدا بدی زمانی برای فرمان بردن مدنی وجود داره و زمانی برای نافرمانی مدنی این برای هر ایمانداری مهمه که در رابطه اش با حکومت فکر کنه و تصمیم بگیره بذارید فکر کنیم که شما از مشکلاتی که توی حکومت شما هست آشفته اید خیلی از مردم اینطور هستند خیلی از مشکلات در این مورد هست برای مثال مشکلات سخت جنین وقتی شما علاقمند بشید تا در مورد این مسائل مطلع بشید وقتی که شما از این مشکلات آشفته بشید چیکار میکنید فرض کنید که قانون غیر مسیحی جهانی به تصویب رسیده آیا اونها ارزش دارن؟ خیلی‌ها تصور میکنند که باید قید قوانین رو بزنن و رفتارهای ضد قانونی داشته باشن. طوری که در این حال ارزشها و هنجارهای انسانهای دارای تولد تازه را هم رعایت کنن. این راه حل مشکلات نیست. شما نباید از مردمی که تولد تازه ندارن بخواهید که به های روحانی احترام بذارن. اونها دیدی انسانی دارن، به خاطر اینه که انسانی فکر می‌کنن. چه چیزی را از اونها میشه انتظار داشت؟ چطور شما باید از اونها انتظار داشته باشید ماموریت بزرگ به ما چی میگه پس بروید و همه قومها رو سازید. ولی خیلی از مردم به این جریان با دید خودشون نگاه میکنن ببینید به عنوان شاگرد مسیح حکمت شما برای حکومت و گرایش شما نسبت به حکومت خیلی مهمه در رومیان باب 13 پولس رسول با ما در مورد معمور برقراری صلح و معمور اجرایی صحبت میکنه و میگه آنها در نهایت خدمتگزار خدا هستند پولس سه بار میگه که او خدمتگزار خداست. پولس درباره قوانین ماموران اجرایی که تولد دوباره مسیحی دارن صحبت نمیکنه. کنه. پولس درباره سربازان رومی صحبت میکنه. کنه. پولس میگه اگه شما میخواین که با اونها همراه بشید، باید مطیع قوانین اونها باشید و اونها نمیتونن موجب آزار شما باشن. ولی اگه شما به بانگی دستبرد بزنین، اونا میتونن از قوانین بر شما استفاده کنن. یادتون باشه همونطور که میتونن ادالت رو در مورد شما رعایت کنن، اونها خادمان خدا هم هستن. امروز اونها میتونن از هفتیر اتوماتیک نه میلیمتری یا چیزای بدتر استفاده کنن. اما اگه شما بانکی رو بزنید و تیری به سمت شما شلیک بشه، پولوس میگه که اون کسی که به شما شلیک کرده خدمتگزار خداست. پولوس در نامه خودش به رومیان فصل 13 از مقوله ای صحبت میکنه، مقوله ای به نام خشم خدا و آینده و همچنین خشم خدا و زمان کنونی همین الان و در بود کنونی زمان بیان و تجلی خشم خدا دیده میشه. خشم خدا از طریق مأموران اجرایی قانون برقرار میشه. اگه این رو باور ندارید، پس بر این باورید که مردم گناهکار هر کاری دلشون بخواد باید انجام بدن و هیچ نظارت و کنترلی بر کارهای اونها نباید باشه. هیچ قانونی نباید وجود داشته باشه. نه دستوری، نه آرامشی برای کسانی که میخوان قانون مدار زندگی کنه. پولوس در باب سیزده رومیان میگه هرکس باید تسلیم قدرتهای حاکم باشه. چون هیچ قدرتی جز از سوی خدا نیست. کتاب مقدس میگه که خدمتگزاران و شبانان توسط قانون خدا تعیین شدن. اما معموران اجرایی که قانون رو به اجرا میذارن هم جز به خدمتگزاران خدا به حساب میاد. چرا که قانون خدا رو به اجرا میذارن. در رومیان باب 13 پولس میگه قوانین از سوی خدا میان این همون خداییه که به ما گفته چه چیزی خوبه و چه چیزی بد سرچشمه همه قوانین خداست پس قانونی که معموران اجرایی از اون استفاده میکنن از طریق خدا و قدرت خدا میاد حالا واقعا متوجه منظور پولس رسول در باب 15 میشید باب پانزدهم بینش پولس رسول رو به ما نشون میده جهان در درون قلب پولس قرار داره این در باب پانزدهم خیلی آشکارتره. در کتاب اعمال رسولان دیدیم که پولس با وسواس به روم وارد میشه او به طور مداوم میگه من باید روم رو ببینم و به اونجا برم با این حال پولس در باب پانزدهم رومیان میگه امید دارم سر را هم به اسپانیا به دیدار شما بیایم تا پس از آن که چندی از مصاحبت شما بهرهمند شدم مرا در سفر به آنجا یاری دهید رویای او در امتداد سفر روم گسترش پیدا میکنه او روی ایمانداران روم حساب کرده تا او رو حمایت کنند که به اسپانیا بره و اسپانیا رو با انجیل عیسی مسیح برکت بده. پولس در باب 15 رومیان عبارت بسیار عظیمی رو به کار می بره. پولس میگه که تمام این کارهایی که به روح خدا انجام داده از اورشلیم تا ایلیریکوم دور زده جایی در میانه ایتالیا و آرزوی پولس این بوده که همیشه در جایی بشارت بده که هنوز پیغام عیسی مسیح رو اونجا نشنیدن. این یک آرزوی العاده است. او هر آنچه که میتونسته برای بشارت انجیل انجام داده. در این باب بسیار زیبا وقتی پولس حرفای پایانی خودش رو به رومیان با فرستادن درود در باب شانزده تموم میکنه شما قلب این مرد بزرگ رو می‌بینید. پولس به تمام جهان رو در قلب خودش داشت. پولس به راستی تمام جهان خدا رو در قلبش داره. پولس انجیل رو در قلب خودش داره. رویای نجات مردمان گم شده این دنیا رو در قلب خودش داره. باب پونزده یکی از عظیمترین بخشهایی که پولس در کل زندگیش نوشته. با خوندن باب پونزده خواهید دید که پولس رسول چگونه تمام این حقایق رو در زندگی خودش و در دنیا به کار می‌گیره. این یک چالش کاملا آشکاره که بعد از پولس، این ماییم که باید این حقایق رو در زندگی خود و تمام جهان به کار ببندیم. آیا مایلید که خبرهای خوش را با دیگران در میون بذاری؟ پولوس گفت که بشارت انجیل عیسی مسیح به همه هدف او بوده این هدف ما هم در دانشکده کوچک کتاب مقدس هست. و کاملا به شما اطمینان داریم و میدونیم که این هدف شما در زندگیتون خواهد بود مطالعه کلام خداوند با شما عزیزان بسیار شیرینه با این حال این گنجینه و حقایق ابدی هستند که همیشه درمیون گذاشته گذشته میشن مثل ای عالی از غیرت و تعهد نسبت به کلام خداست. او به همه جا سفر کرد و کار عظیم خداوند که در زندگی خودش اتفاق افتاد رو با همه در میون گذاشت. این زندگی کوتاست و ما به سوی ابدیت در حرکتیم. دوستان در جلسه بعدی هم مطالعه کتاب مقدس رو ادامه میدیم و تمام چیزهایی که خداوند در قلب من گذاشته رو با کسانی که فیض عظیم خداوند رو دریافت نمودن در میون میذارم. اگر تا به حال شما کاری که خداوند در زندگی شما انجام داده رو با کسی در میون نذاشتید ما این باشه که به شما قدرت انجام این کار رو عطا کنه بیاد داشته باشید که شما از خداوند دستور دارید تا امتها رو شاگرد بسازید حالا تا برنامه بعدی قدرت روح القدس آرامش و سلامتی اون بر شما باشه تا شما شاهدی جسور